یک جهت که این بحث حجیت خبره بوده یک جهت هم به لحاظ دلالت و صحوره که در مباحث قبلی گذاشه چه در مباحث حجیت ظهور و چه در مباحث حجیت قل, قل و قلی یک جهت هم راجع به طاقه و این جهت صدور که طبیه باشه یا نباشه و ارز کردیم که برای اصحاب این طوری باتون بحث تقییه را هم به این احساس و سجعت صدور را با حصر در در هر مورد کنده این است کلام را برای رایان را به بحت باشه نرد تقییه این طوری خلاصه کردن این بحث ها از شد که این مطلبی که به نهاد صدور و این اصطلاح ایجاد ارتباط ما با صدور خبر و سب ساعت ساعتی بیست سال کمتر بیشتر آنچه داره از که فقط به تحریق های رجالی و حدیثی و خبری و صدوب خبر و بحث خبر باقید هم نمیشه در مواقع سمان تحریق های فکرستی هم باید اضافه بشه تا این مطلب حل بشه یعنی فقط به بحث رجالی و خودجیت خبر باقید موسوق و صدوب یا سقیاره انجام نمیشه بحث دوم هم به نظر ما بحث متن اضافه بشد که در, کلمات در اون که در حالات اینه اعلام بحث سوم در بحث ظهورات و اون مدار متعارفی که در حوضه های ما هست انصابش مشکله ما یه مشکل کلی در روایات و حتی آیات مبارده که روایتی محل کلاب شده و اون که از این الفاظ استفاده قانونی بخواهی بکنیم یعنی چیزی رو که ما میخاریم گاهی با خود روایت نمیسازه که چند مثالش دیود گذشته بحض چهارم هم که جهت سلوک باشه با یک اثارت جهت سلول که اصل اول این است که کردن در بایان تغیه نباشه با روایات ما بازم جور در نمیاد یعنی به اون مجموعه مشکلاتی که ما داریم این مقدار بهان مقدار حلنه میشه اینشالله الله توی بحث تاروز من دیگه اونجا اون میشم مثل مرموم صاحب و ایشون اصلاح داره که اساساً سر اختلاف روایات ما فراد تهریه است و لذا ایشون رمز اساسی اخند تهاروز از مسئله طبیعه است از وقت و صحبته و اینشالله خانیم گفت که ایشون در باب طبیعه که میکنه که تو مرحله تربیه علیتی اصل رو و دیگه تربیرین لازمش هم این نیست که این فتوا به نقل سنت باشه. گاهی تربیه به این بوده که عقیمه ایجاد خلاف بین شیعه رو و لذا چون که اونشون اصل و میگیره اصلا به دنبال معافقه از مخالفه سننی ها هم نیست اصل اولی اساس. تعارض روايات اهل بیت رو یعنی توسعه خاص ایشون قائله حالا این مطلب روز هست که ان شاء باید در اونجا بررسی بشه ایشون که اساس این مشکلات و تعارضاتی که ما الان در روایات داریم اساسش تمدی است و حتی در تبیین هم که در بحث کردم به دنبال آواشناسیان باشیم مثلا در مورد اصطلاح صبح مسافر یه رو که اگر قبل از ظهر بود مثلا روزو بگیره بعد از زور بود بگیره قبل از ظهر بود افتار بود یه طائفه یه رو باید داریم به تغییر اینها رو طائفه اگر نیت شم کرده اونجا افتار بکنه نیت نکرده روزو بگیره به سار رو باید تمیت نیت. با تمیت نیت افتار بکنه با عدم تمیز نیت روزه بگیره اگر نیتش، نیت سفر از شرم خب به حساب ظاهر آقا اون یک تقریباتی دیگرک هست اونجای کنشه به حساب ظاهر دو دو دو رواریت هم بکنی از دو طایفه هست حالا این اون دو طایفه از رواریات ما داریم و آرا عدسانت با این چون رو ندو خوری انسان عدسانت میانده سان مخلی هر اینطور روزه بیر روزه نگیره آزا ما اونو اصلا دنبال این تفسیری که ما معتقلی نیستن به طبیعت و عدم و طبیعت و قبل از ظهر و بعد از ظهر در پس به آیات ما معارض موافقیش کنه شده موافقه با اهلسان نیست با سالفنده رو یه هم رو بطریه بکن تصورات سالفدایت عدس الله نفسی تصور خیلی بزرگ نیست از تقییه به این سادری که من رو با اصال تردام تقییه حلش داشت رو حل نمیشه خلاصه ای مطلب این که اینه که ایشون با یک اصول کلی خواستن یک رو حل بکنن با واقعیت رو غایت ما نمیسازن. لذا این نکته رو در نظر بگیریم ما سادر رو مرز کردیم خیلی از مطالب در اصول گفته میشه اما حتی فقیل میاد توی فرم میانه با اون قواهده که روی نمیتونه استفاده کنه باستا این بحثه ای کنان اینجا این راجع به تا اینجا این مطلب مقدمه پس ما بحث خبر خبرواهد رو داریم البته شما شاید ممکن است بیگن خبرواهد فرمه مدانه رجالی یا فرزی رو شده در یک کتابی بسید نگاه حلیظ آمده همتونه فرمشه ای هست هستم این فرقش اینه که اگر کتاب باشه مثلا کتاب بین اصحاب ما جا افتاده باشه ممکن در مقام اجازه یه ندر اجازه گرفته. از اون کتاب و صلاح حلیز در کوفه جا افتاده اینقدر جا افتاده که وقتی که روایت سعی هم که امام به همه هم مثلا برای هماز بخونی از روبره میعرفه در کتاب حلیز به صلاح من کتاب هستن هفت کردم رقایتش هفت خب وقتی کتاب بود خیلی آثار داره یعنی بخاطر اینکه این نویشگاه این دست به دست میشه خصوصا چون اینها فقه بوده عمل بشی می کردن عملا در جامعه شیعه در به این کتاب بعدها در زمان حضر رضا عقیمه بعدی به این کتاب عمل کردن و این کتاب دست به دست کشته دیگه ما دنبال بحث و خبر واقع علیزو بین دنبال وضعیت بحث خبر باهید نمیبییم و اینشان را عرض میکنم یکی از اشکالات اینشان توضیحاتیشون بعد عرض میکنم یکی از اشکالات مهم بحث اجازه خبر اخبار معلی است که اینشان را عرض میکنم چون در کلمات از ما درست نیمانه این بحث اخبار معلی توضیحاتش رو به در تاریخی و اینکه نه باردون یکی زیاده خیلی. توضیحاتش رو در حاضر تاریخه یکی از اشکالات مهم عملیگره ها که با خبر مخالب بودن این که عدد ریهود اخبار معلو رو نمیگیره خب این اشکال بعدها به مسائل ما هم سرایت کرده و تا حالا دیاره تر چون مساله شیخ برساری این اشکال نمیشن سعی کردن جواب بدن ما اشکال همونجا توضیحاتش رو ارز میکنیم اولا از جوابای که اسحا ما دادن تو همین و توی مشایخ اون اصلا این جوابها با اون سوال با اون بحث نمی حالا برای توضیح دارد. اون بحث اصلش چی بوده؟ بعد چی رو توش کمازیاد شده؟ و اصولا اون چی که ما در کتاب کافی داریم مثلا برداشتش نمیشه اینکه که یه حدس علی بن ابی الربی این اثر اصلا شری نداره. علی ابن یه حدس عربی، اینم پدرش این هم حسرش در نوپره یه حدث انا سکونیی هم سکونی قادم و این اثر این سند و ما از کردیم در طب تحقیل فیلسی که ما به خیلی این حدثه کتاب <تصفح> سکونی بوده این نسخه به دست کله می بحث حدثه می کنه دو خبر باخته دو خبر بازی مردان بعد از شده ای شون بازه از امارا اینا خیالی که نمزه این شرایط همون عصا نیست که اگر مثلا یا این اشکال اخبار معلول است و اصلاً مخالی میاد که حتی کدوم کدوم موارد شرط بسیار زیاد نیست برای یه تحلیل جالب فیلسفی خیال نشه که برخیشون در, در بحثای فیلسفی هم میاین با وجود اینکه نه اینطور نیست توضیحاتش این هاشش و در خلال بحثای آینده این میشه. مرمون استاد بعد از این مقدمه مقدمی ای که آیه خبر بحثیز را در محصول هست وارد عدلی منکرین حجیت خبر بارد شده. بارد بحث شده از که ما قبل از اینکه وارد بحث بشیم اینشالله تعالی یک نکته از کنی باید به تاریخ حجیت من استاد نظر واردشون فقط به تاریخ بوده به شیعه بوده ادله حجیت منکرین حجیت رو و سه مرمو سید مرتضا به دیگر هم مفتر کردم ایشون اینها رو بوده ما ایشاقا عرض میکنیم که اصل حجیت خبر و اشکالاتی که داشته خبر این از چه زمانی و چجوری مطرح شده و چجوری شکل گرفت تا بعد منتنی شد به این تدوین حدیث صحیح و حسن رو که جا رو مشکلات گرفته بشه و بعدی ها هم باز تا چه مقداری منکره و بودن اون در اون فضای عمومی دنیای اسلام مطرحش میکنیم انشاءالله و توضیحات رو هنجا خواهیم ارز کرد این مثل مرموزداد این صاحبزاق اول وار به منکری نومسکتی نومجیت نمیشیم چون این بحث میخواد بیاد اونجا بودتر او از اون قبل از اون بحث که اون بحثه که بعد ارز میکنم قبل از اون بحث یه بحث دیگری به نظر من در اینجا در مبانی ما لازمه و مفید چون دید این نحوه تا طارا مطرح نکردم به ذهن هم میاد که این بحث بحث مفیدی باشه خلاصه اون بحث اینه که به ذهن میاد مبحث حجت خبر واحد در خود دنیای اهل سنت به عنوان یک قضیه حریری مطرح شده مثلا میگن هر جا عادلی باشه هر کسی عادل باشه خبرش حجت یا آتی سر نشه اون نحوه ترک بحث واجیه این چون قبل از بحث واجیه کاملا به نظر ما تاثیر گذار و نمی تا حالا متعرض نشود تقریبا داشتن فکر میکردن میشه یک مطلبی ای رو اینجوری گفت که اون چیزی که در کلمات اصحاب یعنی اصولی اهل سنت بوده یا مثلا اصحاب متأخر ما و مسلک های دیگران یه نوع بحث به اصطلاح به نفر قضیه حقیقیه بوده این به نفریه بوده که کلن حال کرد و محدودیتی به عنوان موضوعات معینی مطلح نبوده مورد معین و مصداق معینی مطلح نبوده اصطلاح کلی بوده همجای خبر سر رو باشه مقبول لیکن احتمال داره که بعضی ها این منصور بیشتر سری کردن روی قضیه خارجیه ببینن واقعا اون ترک من اینه ما بیاییم بینیم دو تا فرق بزه قبل از اینکه مورد بحث جیت بشیم برای تحدیل و تدقیل در مورد بحث این نکته رو متعدد بشیم حالا من ابتداراً یک کلامی رو که محروم آیه استادمون از آیه نایه استادشون رو فرمودن و همین مقدار ایشون در اینجا شنون هم نیمون خیلی رو بودیم و همین مقداری که ایشون در اینجا این رو در بحث کسانی که قایله به عدم هون جل خبروار خبر با رو نیست مرموم مستاد چند که اجماع اون معروفه که سید محتضا ادعای اجماع کرد و از عدم خبر بعد مرحوم شیخ توسی که شاگر بینشان و محاصر ریشان. یه سی تقریبا هم کمتر بعد از سید و سیوچی که وفات مرمون شیخ یه سی و چار سالی مرد از مرموم سید مرتضا مرد از مرموم سید مرتضا بروختیم و شاگرده ایشونم بودن گفته شده تا آخر آمم ترس سید می‌رفته نمی‌دارم یعنی تا آخر آممون شد کجا برای عظمت مقام سید مرتضا شیخ و با اینکه خب واضحا واقعا از اوائل جوانی، مثلا کتاب تحذیبی نوشه یعنی چیزی حدود 18 سال بعد از شگور به کتاب و تحذیبیشون خب در برداد بودن میانی ۱۰۰ سال در سید می‌رفسن حالا شاید برای احترام بهشان بوده بعد مرحوم شکر قاعد است به اجماع بر قدم و وجیهت، بر تو جیهت به قبر که یکی از بحثات که انشاءالا بعد از می‌کنه مرحوم شکر هنسالی به بردانانی و برد دیگران بحثی رو مطلب کردن که ببین به این کمارو شکر باسه یه یکی که هم بکنه یکی است یکی ادعای اجماع بر حجر خبر کرده که شیط توسی باشه یکی هم ادعای اجماع بر عدم حجر خبر که باشه. اینجا در این اول بحث بی این مناسبت مرموم این نقطه همین جلده به اصطلاح شما به دو یا به شماره 47 که بیخونم صفحه 172 مرموم آیتوی کنان رضا کرد محقق و خبر اصطلاحه من معتولم این محلم لکیفه این رو قبل از رو بحث رو جیت کاشتی زرکی نه زرکه دگر بر با اون به اصطلاح زبه الاری خودش انصال مرد فوقاناده از از کردم وقتی بزرگی که شمای بودیم شوهر تو منزل تنها بودیم شو میگم من به نظرم علم و علمای شیعه در طور تاریخ مرموم ناینی زاده ما شکری بود. که من صحبت این بود که احادث فوقا مربوط صاحب شورای محمره دیه ایشون میگه به نظر من فی خبر ذکر فی خبر ما یقابل از که متواتر باشه خبر رو به اساس خبر رو متواتر وقتی واحد باشه به نفع اضافه میگه خبر واحد می نمیزن خبر واحد و خبر متعاطه درست نیست خبر واحد و خبر متعاطه اگر متعاطه باشه صفت خبر اگر متعاطه نباشه واحد باشه به نحوه اضافه ول محفوف بالقنیت قطعیه یه درکه مورد اینه سانی ها الخبرو زعیف فی مقابل موسع یه درکه مورد از خبر الواهد در مقابل خبر متواتر و محبوب بلعیه است یکی هم خبر زعید در مقابل موسط و به غادا اینجور اجماع سید مرتزا و بین اجماع شکتوسی جمع کنید و به غادا یجماع بین قوله اعتبار ان مراد منکر لهجیت خبر الواحد این روز خبر الواحد روز کسی که منکر حجیت مثل محبوب سید مرتزا حوال خبر و ضعیف و مراد قایل به وجیه حوال خبر و صحیح و معصر مثل شیخ توسی لذا مرحوم نایی می که پس کلام شیخ توسی در یک جهت کلام سید مرزه در یک جرته شیخ توسی که حوال خبر و حجته یعنی خبر صحیح نمی‌خواد این خبر متواطر باشه یا محبوب بقید باشه همه که صحیح اونجا مردم سید و که باید خبر باید حجت نیست یعنی خبری که ظریفه این خبر باید حجت نیست ولذا به این ترتیب جمع بکنیم بین خب این دوتا تا. روزا خب اونجایم خیلی انجورده یکی مادر خواهد صحیح وجه که بیاره جمع نیست باعض می‌شود و یشهد به ذالک ان شیخ طوسی معکوم همین در قائلین به حجیت خبر واحد ذکر فی مسأله تعارض خبرین و ترجیحهما ترجیح احدهما علی الاخر ان الخبر مرجو لا یعمل به لانه خبران خبر, خبر واحد چون خبر واحد عمل بشه میشه فجر API ها در تعلیم علل اصلاح سانی خبر واحد یعنی خبر ضعیف و علیه یکونو خبر الواحد الموسوقه به بخ... الموسوقه به صفت خبر باشد نه واحد خبر الواحد اگه مراد سقه بود خبر الواحد می میگو چون مرادش خبر خبر الواحد الموسوقه که مرحوم مهد کلام حجتا اجماع هن. یه مطلبی رو مرحوم آینی در اینجا قرم برای توجیه کلام تو مطلب این مقدار زارش درست نیست ساخن بحث رو نیست زمینه فرند و اینی که اینطوریه که یک حضرت داره که شیخ این جور فرند کردن ارسل دادن کلالنی واقعا این بزرگان ما این کتاب‌های شیخ رو دیدن یا ندیدن ما یک نوع انصابندی استرا به نقض به احترام میشه یک نوع استرام در کلمات شیخ میبینیم در این جهه اینجا بحثش نیست یعنی این هست واقعا شیخ در چند مورد در تنظیم و استفساد میگه فعادی اخبار و آهاد لا تو علم و لا عملم و سندش هم است. شیخ چندیش ها درها مورد مرسل ابن عمیر رو در کتاب تنظیم ارده در یه مورد دوم دو مورد میگه فعلا خبر نه مرسل که محوم مرسل تو مقدمه محجم رجال حدیس همین عباده شیخ ارده دقیقای که مراسیل ابن عمیر بجرده خیلی عجیب و از خصوصایی شون در ها مورد محصول مریان رو پتا گوش بیش دادید یک نوع استرام ما در کلمات شیخ میبینیم من الان آن نمیدونم حالا آیا واقعا مراد شیخ این بوده که مثلا بگیم این خبر رو به حرفا ما حجرت نمیدونیم مثلا مشروع بهش عمل نکردن ترکش کردن اصحابه اعراض کردن اضافه او بر گفت که محصول هست. مثلا جنبه به قدرخ اضافه ی چیزی که مثلا بیشتر کاربردش بکنه و اله خیلی بریده در چند جای داره به نه اخبار و اهان داد توجبه و رحمه خب این ان اخبار و اهان داد توجبه المنامل و رحمه عبارات خیلی مرتضا یعنی عبارتی شده عباراتی من یه توضیح مختصری عرض بکنم وقتی که این حالا مقدمه کنه بخواست چون تا حالا چند تا گفتم وقتی بحث مجد خبر واحد مطرح شد اینجوری مطرح شد یک اصلا خبر واحد فی نفسی یو جبال علم امنا یک عده که استالام هم بشونن حشبیه افراد ظاهر بین افراد ساده لوم اینا میکنسا خبر واحد علم میاده یکیش بیاد به شما بگه خونانج در دکان بکنه. ما علم بکنه این یک رعی بود این در اصول هم منعکس شد غالبا قائد نبودن میکنسا خبر واحد یو جبال علم اینطوری راه دوم اینکه حالا اگر علم نیامد هجه هست یا نه عده میگفتن حجت عده موزن نهکیم شای توضیح داشته میگفتن به جای کلمه حجت میگفتن یوجه بل عمل املا. ها ولی زاد دو تا محس مترتب داشتن یک خبر رو باهید یوجه بل علم و یوجه بل قط خب اگه اینجا بل قط دیگه قطعاً حجت دیگه چونید بناشون که قطعاً حجت یا ذاتی داره یا قطعایی برن دو اگر موجه به علم نیست حجت هست یا نه رضای اینطور طور می گفتن مثلا خبر رو لا یوجه و یوجه عمل. یعنی حجت این اصطلاح اون زمان دقیقه رو همونی به اصطلاح در بحث حجیت دید کلامی داشتن حجیت دید حسوبیه اینه خوب دقیقه ما چند بار عرض کردیم که ما خیلی مهمه زاویه بحث حتی در مقام اختیار اصطلاح اصطلاح رو که می پسن براءة حکم عقاب بلا ای براعت برس که. اما بلا این حکم خب براءة یک بحث اصولی است اما حکم عقاب بلا بلا بر کلامی است میدونم هدفشون براءة نیست فببین اصطلاح کلامیه در مقابل کسایی میگن اختیار میگن حق و طاعه موجب اختیار خب اختیار اصطلاح اصولی است اختیار مثل براءة اصطلاح اصولی هست. اما حق و طاعه اصطلاح کلامیه حق و طاعه اصطلاح کلامیه نظام ما همیشه در مواحظ اصرار داشتیم که در مواحظ هم حتی وقتی میخوایم طرح تره بحث بکنیم استلاحات همون فنده به کار ببریم مثلا به جای براعت بگیم احتمال منجز هست یا نه تنجیز بحث اصولیه مثلا اینجوری بگیم احتمال در غیر اطراف علم ایجمالی چون در اطراف علم ایجمالی بنابر معروف منجزه احتمال در غیر اطراف علم ایجمالی الو من بچه ایرل من که چیم احتمال, احتمال, احتمال باز، احتمال بسته چون احتمال بگویی بازه، مثلا احتمال شربششون حرام آنقدرشی می‌بینی که بازه. احتمال بسته مسی کی یا این نجسه یا اون نجسه این احتمال بسته. ایل می‌جمهد که می‌نگریمش. پس شما این بسته مترم که آیا احتمال من انجز هست؟ اون بهتر از این که بگیم قبلاً قابل ها نتیجه یکی قبول داره نجیب برایت برایت براعت سلاح و وصولیز. اما خود اصطلاحی که به کار برده شده کلامیه این یو جبال علم و عمل بیشتر نازره به جنبه های کلامیه چون ایجاب ایجاب بحث کلامیه لذا در قدیم این کتاب سید و مرتزان همینطوره عبارت سید این لا تو و مرتزان لا عمل این استا... کلامی سید و مرتزان هست پس سه تا مبنا در حجت خبر بود تو جبال علم خبر واحد یو جبال علم یو علم و لا عمل لا یو علم و لا لحمن سه دو مبناش اینه ما الان چی تعبیر میکنیم؟ بگیم خبرواهه مفید علم نبودهش پیشمالی و واضحه یعنی یه اصحاب الان توی اصول اصلا از این بحث نمیکنن مفیده خواهده مفید علم نیست دیگه یه کسی باید باش به انسان بگیم سقن باشه اصلا اختمال خلاف میده پس یو جبال علم دیال آمانه نداریم دقیقا می به جای یو جبال اعمال یو هجیه لا یو جبال اعمال ادم هجیه اینی که مرمون نایین کنم یه شد و دردار میکرد مراجعه دقیق به کلمان شیخ نشده بله ما یه احتمال دیگه از چون این احتمال ما سابقاً دادیم یه فقیل دیگه یه شده از کنم داد بنابرای خوده من فکر می کنم چون تا حالا نگه بودم کسی متعرض شده باشه فکر می این زاویه اختلاف شیخ و سید مرتزان رو به یک تعمیر اصولی دیگه با یک فرم دیگه ای مطرح بکنیم و اون اینطور مطرح بکنیم اصولا ما وارد بحث وجه خبروارد مخلی بشیم دو دیدگاه وجود داره یک دیدگاه اصولی که اطلاع اصولی دیدگاهشون این بوده هم. و اون این که بحث از خبر خبروارد به و قضیه حقیقی باشه یارم یعنی مثلا یه خبر عادیه هر خبر عادی دو مقیل مثال و حالا فرض شما مثلا شافعی منبر مثال 500 تا خبر عادی پیدا کرد عملی نه اولی که شاگرد ایشون باز از ایشون مثلا 700 تا پیدا کرد یکی دیگه که باز از ایشون 1000 تا پیدا کرد کار رو داره بعدا اون میگه خبر عادل. خبر شده بگی اصلا بحث اصولی که مطرح بوده از اول تو حوزه خبر وارد به نحو قضیه حمیدیه بوده در مقابل ادهی آمدن گفتن مثلا منبانبس ها مثلا زگی ها گفتن این خبری که در این کتاب معین حجته که این اسمش بزنیم نه به قضیه خارجیه میگم چون تا نیرکیسی مطرح کرده میخوام مطرحش بکنیم بگیم در حقیقت کسانی که به این مسئله از یه قضیه خارجیه نگاه کردن اینا در حقیقت از اصول خارج هم. حقیقت این بحث به ن قضیه حقیقیه باز باشه بود قبل از روز در بحث مکری رو ورز میکنن. چون خود من تا حالا اخباری ها رو روزا با وجیت قرار تعبولی میدانید. بگیم نه اخباری ها اصلا خارجه کللا از این بحث اصوری خارج. س اخباری ها از بحث و اصولی خارجه. نقطیه خروجیشونه که اخباری ها بحث و بردن روی یک دیکتاتپ معیند. مثلا 20 تا 30 تا چه تا پ تا کتاب هست، ما این کتاب تو خودشه حالا اگر یک کتابی بعد پیش شیعه بیدار شد نه دیگه ارزش نداره ما الان خود من تا اخبار والیاب به اصطلاح تصنیف میکردیم قرار بودیم در کسایی که واژه بوجیت تعبدی هستن تو این تصور اخباریا رو خارج بکنیم و شاید منظورهایی می‌خاست همین نکته ظاهر عوضش این نبود اگر ما بیایم این کار رو بین شیخ حسینی همینو بگه دقت رو کنه ببین سیلم از ذا که میگه خبر واحد حجت نیست لایجه بر اجماع الا این نظرش به بحث اصولیه به و قضیه حقیقیه شیخ توسی که میگه اصحاب عمل کردن بر احوال این به و قضیه خارجیه است اصحاب عمل کردن به روایات کتاب صلات حریز بود در کتاب معاویت و اعمال در کتاب علی کتابو معیار بخاری اگر عمل کرده به هر خبری ای که را ایش باشه چه این باشه چرا باشه به این ترتیب باشه عمل کرده و لذا شما ببینید که مثل حاکمین شاگوری بعدها آمده درها صدها حدیث ارد گفته رو شرط بخاری صحیحه چرا بخاری نگرد دقت میکنم اما شما راجع به شیخ توسی اینه نیمتونی بگی راجع به اخباری نیمتونی لذا من یک احتمالی دادم به این که بیم بگیم طبیعت بخص اصولی برن و رضیه حقیقی است و اخباری ها چون اخباری ها خب ارز کردن در مولا محمد این استفادی کنی اصول رو بات میدونن اخباری ها در حقیقت ولو به اخبار عمل میکنن می و خود جفت میدونن از اززاوی اصولی نیست مثلا بحث و اززاوی و اصولی وارد نشنن اخباری ها اززاوی عمل اصحاب از در اون شاید بندی که کردن شوارد عمل اصحاب نگاه کردن لذا قبل از در دربست این بحث لطیفیه و تعارض سید و شیخ رو به این مقدار حل بکنیم سید مرتضا به, به قضیه حقیقیه میگه خبر خبرواه بجتی نیست شیخ توسی به نفت و قضیه خارجیه میگه حدیف دوتا میشن ده شیخ توصی که ادعالی اجماع کرده یعنی موقع اصحاب ما خطاب اصلا محو عمل کردن به کتب اصلی صحیح اعلانی کردن به کتاب علی رجعتاً دقت کردن این شو قضیه خارجی پس به جای اینکه فقط جمع نکنیم و من در همین جا شاهنامه فقط جمع نکنیم نه اینکه خبر محو به قرائت که مرحوم نوی یعنی مرحوم نوی حس می‌کنه یک نحوی این دو تا کلام کلام سید مرزا قزلباش و کیرتوسیز با وجه نوی حالا ما بیم بیم تفسیر و اصولی جدیب بریم بگیم بحث و جهت خبر و باید باید قضیه حقیقی هست بحثی که اخباری ما مطرح کردن یا شیخ که میگه اجماع اصحاب عمله و اخبار این بیمه قضیه خارجیه هست این من شروع کردم اصلا قبل از وقت در بحث ما بیم بگیم, بگیم اونایی که در اصحاب ما و اخبار ما اگه عمل میکنه از بحث اصولی خارجه هست بحث اصولی با در مورد بحث در دور نافذه متصادف چرا؟ دیگه؟ خبر خبر به ما خبر عمل میشه و روی سیادت باشه. این به با این کتو عمل کنه به هم دارم؟ خبر هم دارم؟ نه چون تلقیه بر عدم به اعصاب مثلا دارن که امام عسکری مثلا کتاب امام اسکریز. کتاب یونس الیزن گفتن رحمان الله یونس این کتاب تعییر از اصحاب به این جد عمل کرد یا به امام جواد عرض می که آخری از صوت صوت در از تقییر نظیر زیر خواهی بکنند در بودی حضرت می فرماد عمل بکنی پس این نه بر گرد به خبر واحد و نه محبوب به قراره این برمان یک وزیفه بینی مطرح بودی این رو ما از بحث حجیت خارج بکنیم دقت رو اینی که شیخ میگه خبر واحد بکنیم این تو بحث اول جلد خبر وارد نیاری مثلا اصل تو بحث خارج بکنیم این از اونم تو حالا این بار اولی چند ذیعه فکر کردم به ذهن رسیدی که اگر ما بخوایم و لزال دکتر دقت بکن مثلا مردم شیخ به به کتاب یا و اشعای عمل نمی‌کنه روزش هم نمی‌بنده من یه تاریخ از این کتاب رو عرض کردم این کتاب در مصر تدوین شده وقتی ها موشه دو, دو, دو در قرن شارم به برگوان به اجازه آمد اصحاب تلقیه به قبول نکرد در قرن ششم هم توسط مرموم سید راوندی این نسخه هم شده اسم نواده چاپ هم شده نواده راوندی باز هم بعد از این مثل املام هم تلقیه به قبول نکرد در قرن سیزده هم یه نسخه از هند آمد مرموم هاکی نوری تو مستده که اولت همی نسخه هند مشهور شد درگانی سیدها هم از این دین نشده اند. بکن. پس زمانی که معلوم این از زمان نسخه این معلوم شد درسته. مثلا نویو می‌دونم یوتیوب و دوای مطرح شد ذکر کردن به روابط خب یه مدتی هم ایکویم یه چه ما ایکو تا حجت. چرا چون احترامی در اسمودن ستقات میدن شوم گفته حجت. اما شعر به ولی او عقباره این چون برای این کتاب ترقیب قبول نشده؟ زمانه را نبوده اونیش را را بندی کتاب را بندی قبول نشده لذایشون را عمل بشن اما اون این مبنوع خبر خبروازه به این خبر عمل شده چرا چون واضح سر بودن این ببینید من هم این ها مطرح بکنم ما به این قادر بشیم بحث حجر خبروازه برم به قضیه حقیقی یه کسانی که میان میگن چندتا خبر به ذات نه فقط به خاطر محفوظ به قرائه از از بحث حجیه خارجند. کردن ها نه اینکه به حجیت خبر واردن، از بحث خارجن کسی که وارد بحث و حجیت شده باید زاویه دیدش به قضیه حقیقیه باشه یعنی میگه هر بر عاده نظر هر بر هر جا هر خصوصیاتی ولو برها کتاب پیدا ممکن ممکنه بردها کتاب پیدا کنه هم معتبر باشه. مثلا کتاب مدینه به صدوق ممکن پیدا کنه میگه. سندوش هم معتبر باشه. ها رو میگه معتبره. این بابنسان رو خواهم بگم. ولو مثلا امثال ساوردها رو چون این راه در اختیار نبود و مشغول مرد ما قابل اعتماد نیست از ما. دقت کردیم. ببین این رو خوب دقت بکنید ما قبل از هرگز در بحث حجج خبر واحد این زاویه بحث رو مشخص اگه این زاویه بحث درست باشه من ان شاءالله این شاء کتاب کامل تموم بذارم فردا ملخص کلام اخباری ها رو براتون می‌خونم که بخیر اینا اصلا تو زاویه اصولی نبودن از زاویه دیگری مسئله رو مطرح کردن ان شاءالله من فرض کردمات ایشون میشه بر بحث اصولی ان شاءالله باشه وصلی الله علی محمد مالجم. یا ممکن است جز ترکی در باشه، امام